بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الأنبياء وسيد المرسلين واله وصحبه أجمعين أما بعد اذا سي گذشت دو تا مطلب داشتين مطلب اول فالمدير رسول الله صلى الله عليه وسلم از نشانه های قیامت الأمة تلد ربتها در روایت امتلدا ربها و ربتها در روایت ورب ربها و ربتها این غزير شرح داديم گفتيم بعضها ها به ظاهر تفسيرش و هم مقصود از حدیث را گرفتن و گفتن که مقصود از حدیث بحث بی احترامی به والدین و و حرمت شکنی حق والدین که همون حقوق والدین از اشیاد میشه و قسمت دوم بحث این بود که سحرانشینان اونهایی که پابرهنه بودن لخت بودن لباس نداشتن اونها صاحب ریاست صاحب اموال و ملک دنیا بشن الان چنانچه بازم احادیث رو خواهیم در همین باب که اینها بشن اهل فکر اهل خرط اهل درک تصمیم گیرنده در جامعه کسانی که سواد ندارن بحث ارزش سواد بحث ارزش فه درک مثلا اعراب وقتی که در قرآن ازشون بحث میشه که خداوند ازشون یاد میکنه الاراب و اشتتو من منفقا نه خاطر جنس عرب و عربشون بود خداوند ازشون منوان نفاق یاد میکنه نه بحث سهرانشینی و بادیه نشینی و دور بودن از شهر دور بودن از علب دور بودن از حلقات علم اعراب منظور سهرانشین بادیه نشینه نه خود عرب جنس عرب نیست اونهایی که نفاق در قلبانها پررنگ شده اونم به خاطر اینکه علمی نبوده که بیات اونها را به خدا نسید بکنه اون علامات منافق را که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه چه از نفاق عملی و چه اعتقادی بیاد اون شخص با علم و نور علم اون نفاق را پاک بکنه نشان های منافق چیه اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و توماقن و درو اذا عاهد غدر و در روایت اذا خاص مفجر شاید در خودمونم شاید یکی از این خصلتا باشه حالا شاید دروغی از دهنمون بیرون بیاد و شاید در خصومت فجور بکنیم دروغ بگیم متوسل به دروغ بشیم و دیگر خصلت هایی که ازش یاد شده خب چون عرب از علم گفتیم دور بودن این چین خسلت ها ازشون سر می احادیث گفتیم در این باب زیاده در صحیح مسلم مسلم و محمد با این الفاظ اذا رأیت رعا یا یتطاولون في البنيان و اذا رأیت الحفا و العرام ملوك الأرض و اذا ولدت مرأة ربها باخته کبیبن پابر هنها بیان پادشاهان زمین بشن در ربایتی دیگر داریم اذا ایت ال امت ولدت ربته او ربها و اذا رأيت أصحاب الشاء تطوالو بالمنیان اونهایی که صاحب بز بودن گزفن بودن بیان در آپارتمان سازی به دیس هفت هفته بگیرن بحث اهمیت به دنیا وینا جلسه گذشته داشتیم و رأیت الحفاء الجیاع العاله كانوا رؤو رؤوس الناس اونایی که گرسنی بودن اونایی که قضاای خودشون نداشتن بیان سرپرست و مسئول مردم بشن بحث بحث این که اون کسی که اهلیت یک کارو نداره ما بهش اهلیت بدیم مرجع قرارش بدیم حالا با چی مرجع شده این شخص با مالش با ثروتش با ثروتش با مالش میاد روی مردم حکم میکنه یا میاد در هم هر مسئله دخالت میکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چنانچه ما در احادث زیادی داریم که از نشانه های قیامت ظهور روی بغه یاد میکنن روی بغه چه کسانی بحث از آسان سوال پرسیده شد فرمودن الگه یتکلم فی عمت الناس در اموری که بم... از امور بزرگ مردم به مردم و مردم و جامعه برمیگرده اون شخص بیاد فتوه بده مسئله مسئله خیلی مهمی هست که متاسفانه ما میبینیم یک جوان میاد با یک سال دو سال طلب علم در مسائل بزرگی فتوا میده خودش رو یک عالم حساب میکنه در هر امری فتوا میده این گفتم در ادامه بحث همون بحث اون کسی که علم نداره و از اون سهرانشین بیاد ریاست ما رو به اهده بگیره طالب علم هم همینطور طالب علم بیاد در امور خاص مسلمانان در اموری که برمیگرده مصلحتش به امت بیاد فتوا بده امر به جهاد بیاد فتوا میده ماشاءالله دیگه بلاتر از اون عالم تر از اون کسی دیگه نیست در مقابلش هرچی عالمه یا درباریه یا نادانه یا از مسائل روز باخبر نیست بر چشمی چشمونه این عالم و اون عالم ازش پرهیز بکنید ازش نشنوید خودش چیه میخواد با حرف و سخن خودش چی میگه نه من میفهمم من حالیمه می این از نشانه های قیامته که رسول الله صلی الله علیه وسلم چندین بار من اینجا گفتم بازم میگم رسول الله صلی الله علیه و سلم علیکم بالاکابر به بزرگان بچسبید و پرهیز میده ما را از اساغر الان چه از لحاظ سنی و چه از لحاظ علم و معرفت و شناخت و دین زعیفن ندارن که اونها رو مرجعیت خود ما قرار بدیم بریم از اونها ال بگیریم در صورتی که علما باشند و گفتم و همیشه هم میگم که اصل قضیه برمیگرده به کبر و غرور یعنی اصل قضیه که شخص بیاد حرف خودش رو حق به شماره و حرف خودش رو حق بدونه برمیگرده به کبرش غرورش فکر میکنه حالیشه فکر میکنه اون چیزی بلده که دیگران حالیشون نیست دیگران بلد نیستن خدامند در قرآن عدب،, عدب محاوره بحث گفتگو رو به همون یاد میده شکی نیست شاید ما یه چیزی بفهمیم دیگران نفهمند. ولی که جهت مخالف ما از لحاظ فکری سرزنشش بکنیم نکویشش بدیم برچسبش بچسبونیم بگیم رو، بگیم نمیدونم این فلانه یا بگیم این اصلا حالش نیست چسبوندن اونجا بده خداوند مثال داوود و سلیمان در قران بهمون یاد میکنه وقتی که بحث از این میکنه که در قضیه زراعت خاصن فتوا بدن ای حکمان فی داود داوود و سلیمان بعد خداوند ابتدای آیه بعد چی میگه میگه تفهمنا عن سلیمان سلیمان را فهموندیم سلیمان فهمید یعنی معناش اینه یعنی داوود نفهمید یعنی داوود این عطای الهی از فهم از درد در این مسئله که اجتهاد بکنه بگاهیش ندادیم که به سلیمان دادی فهم ففهم نها این درد را ما دادیم به سلیمان که بفهمه و در این مسئله اجتهاد بکنه نسبی شاید یه چیزی ما بدونیم دیگری ندونه و شاید دیگری بدونه و ما ندونیم هم دیگه رو با تفاوت فهمها با درگ بکنیم نه این که ما چون یه چیزی فهمیدیم یک چیزی که مثلا بلفرض اون عالم ندونه دیگه اون عالم از شش من بیفته ازش تحذیر و هشدار بدیم کسی طرفش داره کسی ازش نشنوه و با هایی سعی بکنیم اون عالم را بد جلوه میدیم خداوند اگر در قران یاد میکنه که تنابز به القاب نکنید از صفات منافقین جایی از صفات فساق یاد میکنه به خاطر چیه چرا خدا نهی میکنه و تنابز به القاب چرا نهی میکنه و چرا هی مدین تکرار میکنیم؟ یک از صله بود امرو صبح بعد از نماز فجر مینالید از دست بعض از طلاب میگفت که شیخ من ریش گذاشتم به خاطر ریشم بچه‌ها نکوهش هم میکنن سرزنش هم میکنن که چرا ریش گذاشتی ما ریشتو میزنیم فلانت میکنی خب چرا بیا مثلا هدیه از طلاب چون این طلبه ریش گذاشته چرا مثلا بیان باش برخورد بکنن؟ بکنان اولا رسول الله مگر ریش نداشت صلی الله علیه و سلم من مگه بهش امن میکنن سوم من میگه چی تو کم میشه این طرف ریش گذاشته چرا رأی خودت، فکر خودت رو رئی دیگری متحکم می کنی؟ چرا سعی می کنی که رأی خودت بی دیگری القاو کنی؟ این صفات بدیر، کبره، غروره، فکر می کنی خودت درست می چون اون مخالف فکرتو هست، باید اون طرف مقابل مثل شما بفهمه؟ باید به زور به اصرار، باید به دکتاتوری هستید؟ حکمت با زورت یا مثلا با تهدید بیاد اون طرف مقابل حق بکنی کسی نمیتونه روی طرف روی کسی حق بکنه بحث فهم درک اگر بالفعل برای شما قابل هضم شد برای اون طرف مقابل قابل هضم باشه نه اینکه چون آقا ریش گذاشته بهش بگی تون رو دلشو بننجونی برچسب بهش بزنی بگی بیش زش ریشاشو ببین چقدر زش شده چقدر قاطی هم شده چقدر نمیدونم پراکنده هست نمیدونم فلان مسخرش بکنی میدونید خداوند وقتی که بحث تازه مسلمان ها میکنه در جنگ حنین چی ازشون یاد میکنه چیز بدی نگفتن در ظاهر تازه مسلمان بودن خودشون هم میگفتن ما تازه مسلمان بودیم این هنوز علم و معرفت وحی شناخت وحی در قلب ما نفوذ نکرده بود خودشون میگن حدیث عهد به کفر بودیم گفتیم در جنگ حنین وقتی که میومدیم گفتیم به به به به مسلمان دی کسی بهتر از اونها نیست دارن غنیمت میخونن شکم گنده میکنن مفخور همونطور که الان لفظی هست ملها مفخورن غنیمت خوری دارن میکنن مال مفگیرشون اومده دارن شکم, دارن شکم گنده میکنن فقط با این لفظ آیات نازل میشه اونم چه آیاتی آیاتی در تکفیر در حکم کفر این چینین حرف های. این چینین حرف هایی از کسی سر بزن کفره بعد این قل اب الله و آیاته و رسولهی کنتم تسته زیون به خدا پیغمبرش و آیاتش که وحی خدا بنده قرآن و سنت شما مسخره میکنید و بعد خدا قد کفرتم بعد ایمان بعد از اینکه شما ایمان بردید شما کافر شدی اومدن نزر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم همون اشخاصی که چنین حرفی زدن گفتن یا رسول الله ما که قصد نداشتیم منظور ما که بد نبود ما همیتونی به آیات نازل میشه که نه وایدان این چیز دیگه جا و محلی در اسلام نداره این چیز این حرفی نباید از شما صادر بشه مسخره به ریش، مسخره به لباس مسخره به پوشش اسلامی، مسخره به نماز، مسخره به حجاب زن بعضی ها میبینید مثلا به خاطر اینکه متلکی به دختری بندازن به خاطر اینکه چادر پشتید اینکه آه کلاقا اومدن مسخره به شعیره الهی هست مسخره به دین خدا هست که این آیات گفتیم قل اب الله و آیات و رسوله کنتم تستهزئون استهزاء به خدا به پیغمبرش و به نشانه هاش از قرآن و سنت مسخره به اونها کفره از اون آیاتی که خدا نازل کرده مسخره بهش بکنی شما کفر زیدید به خدا با. کفر اکبر نه این کفر اصغر کسی مثلا بیاد به خدا ناسزا بگه بدو بیرا بگه مسخره به خدا بکنه یعنی ما میگیم که نه این شاید ایمان داشته باشه جن میشه بغض خدا دشنامه به خدا جمع میشه همراه با محبت خدا کسی که محبت خدا داره میاد به خدا ناسزا میگه میبینیم از اون بقال معروف از اون لایک که شب و روز دهنشون به بدگویی و بدگویی را گفتن به خدا هست در قلبشون محبتی از خدا نیست چه باشه ولی که جفودش میکنن انکارش میکنن چنانچه فرعون و جه حدوبه ها و سیقنه تنفسون جحود کردن ولی قلبشون یقین داشت باور داشت ولی که جحود میکرد استکبار میکرد اونا هم همینطور اون کسی که میاد بد و بیرا به دین خدا میگه یا به خدا میگه یا به پیغمبر خدا میگه صلی الله علیه وسلم بیاد از رسول الله به بدی یاد بکنه بعضیا مثلا راحت میان درباره رسول الله قضاوت بیکنه نه تا زن گرفته حوثباس بوده معاد الله این کفره این ردت ا جم نمیشه این خصلت نفاق اکبر و ایمان با هم دیگه جم نمیشه مگر الای الله بگیم خیلی بخوام عذ بدیم میگیم سب بوده شاد قصد داشته با طرف تبیین بشه مثلا بلفرض خیلی بخوام عذ بهش بدیم ولی در این که این حرفش کفر اکبر شکی نیست منس آیا... آی... آیاتی که در سوره توبه نازل میشه پس مواظب باشیم مواظب باشیم از این که ریاست طلب نباشیم مثل اعراب ماذب باشیم صفات نفاق تو من نیاد اون صفات نفاق هم وقتی میاد که ما اون علمی که دیاد گرفتیم از علم شرعی را تحکیم خودمون اخلاق خودمون قرار ندیم علم طرف یاد میگیره فشت به مادر فلانی میده فشت به پدر فلانی میده شما میدونید که فشت دادن به طرف ناسزا گفتن به مادر فلانی به خودت برمیگرده و میدونی یکی از بزرگترین جنایات ها کسی که به مادرش فش بده و به پدرش فحش بده شما میگی که به پدر خودت و مادر خودت ناصزا گفتی تو داری فحش میدی این خصلت های اعابه خصلت های اعراب یکی دو تا نیست اگر من میخوام براتون رقم بزنم این از باب حشدار دارم میگم از باب تذکر دارم میگم از باب یاداوری دارم میگم به بزرگان من بر بگردیم از بزرگانمون یاد بگیریم ادب محاوره و ادب بحث و گفتگو یاد بگیری بین امام شافعی رحم الله و مالک بحث های رد و بدل میشه امام مالک یک شخصی میاد ازش فتوا میگیره میگه کسی اگر از روی آب عبور بکنه اولیاس گفتن آری بعد اومد النز امام شافعی رحم الله و گفتن نظر شما چی اگه کسی روی آب راه بره اولیاس گفت که نه از کجا معلوم کون اولیای شیطان نباشه همونطور که خدا اولیایی داره شیطان هم اولیایی داره و ان شیاطین لیهون الی اولیاء کجا معلوم که اولیای شیطان نباشه یک درکی بالاتر داشت اینجا در این مسئله نه در تمامی مسائل در این مسئله امام شفیق رحمه الله بهتر دونست شاید شخص جادوگری از روی آب داره راه میره ولی نه نه امام مالک رو نکوش بکنه نه سرزنش بکنه نه بدی یاد بکنه شاید ما بهتر بکنیم ولی حرمت بزرگتر باید مراعت بشه باید رعایت بشه و الله صلی الله علیه وسلم هم یاد به اصحاب من قبلا گفتم گفتم بازم میگم تذکر زیاد میدم ببخشید چات خیلی از مسائل من تکرار بکنم رسول الله صلی الله علیه و سلم شاهد مسئله ای بودند و اونم مسواک دادن به یک برادر دو تا برادر با هم بودند سهل و سهل به کوچکتره اصحابی میده بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایان کبر کبر اول بزرگتر یعنی چه کبر کبر از جلو دری میخوای بیای بزرگتری هست میگه میگی دست راست یا میگی نه بزرگتر. در مجلس نشستن وقتی که میخوام سلام رو شروع بکنیم از بزرگتر شروع می کنیمیم و سواساصلا بهمون یاد دادن از بزرگتر شروع بکنیم بعد از سمت راست بزرگتر. این آدابه درست سمت راست ولی اول بزرگتر هم طور خود اصل بهمون یاد میدن بعد سمت راست چنانچه در مجلس اگر انسان وارد شد اول بزرگتر حرمت بزرگتر نگه داشته بشه. ادبمون احتراممون باید عزت بزرگتر نگاهه شدهگه وقتی احترامها شکسته بشه حرمت‌ها شکسته بشه این از نشانه های قیامته این چیزی که در زمان رسول صلی الله علیه وسلم نبود و الان داریم می‌بینیم که داره میشه این خلاصه بحث هرچند که بحث پیرامون این مطلب خیلی زیاده پیرامون بحث صفات اعراب، صفاتی که خداوند ازشون به بدی یاد کرده و چرا بد شده و چرا نشانه های قیامت شده این از چیزهایی هست که رسولا صلی علیه و حسن بارها بهش تذکر دادن و گفتن اگر رسولا صلی علیه و حسن بیفرماین اگر امر امری از امور مردم که مهمه و خیلی مهمه به کسی که اهلیت و جایگاه اون مسئله رو نداره اگر سپرده بشه میگه فنتظر سع ایده وست امر و الى غیر احلی کسی که اهلیتش نداره مثلا بیاد یک پزشک بیاد در یک آپارتمان سازی بیاد دخالت بکنه در یک نظام مهندسی دخالت بکنه یا بیاد یک پزشک کلیه قلب را عمل بکنه نظرتو چی میشه؟ یک کسی که هنوز لغت عربی یاد نگرفته نمیتونه بفهمه این فعله این فاعله بیاد به مردم فتوا بده در یک, در یک مسئله خیلی مهم که مسائل روزمره مردمه مردم که بهش نیاز دارد این از نشانه های قیامت صلی الله علی محمد و علی محمد